قمر کردنی دلیر سلین گویگرانی عزیز و خوشویست و عشنان و حویگرانی دنیا کتب سلاوتن نبید خوشحالین لبشی سی و هشتی خوین نوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی هتی نوالاتن فرمون حور بن مکرریانی مکریانی، کتبی چشتی میجورده، بس لشیانی خویده که لوکاتی لگل مال و مندالی لولاتی سوریه بو لما لحاج و جیعون، ترک تورک لومال بنده خطی سنوریان دور و دریج بو کلا قاچخشی بتاقی زور جار کردی بس زمن بو مینانوه ده کجران بلا مزور به قاچخشی کسربازی تورکیان کرده بو مینکانیان کودا کرده بو. بردی دوکاندارانی تربسبی بشی زوری قپو رمین بو برطیلیش زوری کرده کرد. جندرما مرین بو خچاخچی لیده خوری تفنگیان دادانی لعرضی سوریاد تفنگیان ورده گرتوا. ملازو بیرناویک دوری شاری میدیاد دهات جزیرا کتیبو شاری کردی کوده کرده و. جاریک درنگتر لپیشوهات بو جراموه لشاری نوسیبین پشکنین یانم. دیوانی جگرخونو چنشتی که دکی بی سی بودیار بکر دیار بکر لیدا افسریکی درجه سروان هات. کلبچه کردم و خست میان ناو جیب بودیار دیار بکر لریا زور پاراموا. ل ناو لناو شیویک دمانشه با دستا و دای بزندم گتم دم تا تاویکی باش بر شقوز لیدم بکر منجی گوتی سی کری سی کریکی وقتو مالی هزار کردویراندکا کتی بی کردی لپوستی سنوره و دینی جور برو راکا ایدی خوی برو نوسیبین گ کلمه دیاد له پاش سردن مالو بنو سیمین دهت ما جندرمکان ده سیماس کردم دی انگو خواجه تومن گرت افو بک جناب سروان هاته فرموئ ک ته هم معنی قران او حدیث بون حسن غی حاجو که مزن اشرت بو بجحلی تمور جن کی زنه و تمبر یمن جب مزانی کن هنه اغه حولی فرم ک بل هر چی نمتوانی قام هر دو دستم یک را کار که ناچار وازم لحنو زورم زگبه نازیره که سوتا زور لا قدیم و یکی لو ماله هر نوی حاجو بوا حاجوی نازانم چن پشت پیشو عبد رشی ها بوا و قاوچی دیوانی بوا پشت او پشت او رشانه بوا بونه کردیش هر رش بون و هر قاوچی بلام عبد نبون تایفه اک لنو هورکان هن دالایم قدیم لحندستان و هاتون بوانه دالایم مطریب لنا خوینده زمانی که تایبتیان هیم، همو پیوین زرناو دنبک جنو اگر دنخوش بن گرانی بیشیشن، یک لوانه ناوی شیخو نادو بو نخویندوار قط نچو بو شارن، جگر لزرناو دهال جنی قصه خوش یک بو اگر لولاتانی لوشی بو آیا نو بانگی دنیای داده گرد، لسای همو جنواری که دکردو دبو بحو، چند نکته کم لیکر د شعر ول دیوانه کم دا شوانه که د هاته دیوخان مردوی دم دم دی نه پیکنین کمن دمدی کچل پیر بور د مشودریش به کوخه کوه کخ بو نو مایش نای پیکنین وای درست کرد بو کلابر د گوتن هر دبو بو افرین لبکی ش زور کوخی یکی گوتی شیخو ار تا اتوا گوتی دمد ببر را. نیشانی مردنی من زورن یش تا پیدا نبون کمرد نم نزیک به تو سجنوارن کرنازن بزنناتران قلناقرن زور علامتی دیش پیدا دبن کپیت نالیم لسای کشی کل دانیا نی دکر دو ل خوشته کی با میگو دگود کل دانی کن سوئدیان دخوار دیانگود تاو کشی بالام لق سکانی تی نگین دیگو بوت نگن دلیم ای کل دانیا کان اگر پیره میرده کی لاوازی به هزی حفتا سالا لاو دا قوم بکنو با پیلاقه بچ نسری لوانه نفس تنگ به، آمین لین دا پرسی شیخو قد نچویهی چاریک دیگو بالای جاریک برد میانو قامشلی زورنا بو داوت لیدم کاری آو محبو بردیان مجوری گوتیان آودستا می زیکم کرد لقا پک دا سوری خواردو چنگیگ بوگنی کو کردو بلوت می دادا لتاوان ګوم لبیرچووا هاتمو داوت ثنګا تھاوبم وتم کورینا من هل لدشت ریاوم بخیری ختان بمګین چولک لا یوک پیشم کوت دستم لسرشانی بو کوون نبم لبازار وروتیا پرین لوبر لوبر دیان پرسی اری او بدست اشارم دکرد نا پیمنګود جابو بقسنند ګوت نا ګوتی د ترسام هل لبزم بقر له و هل رجه شیخو د جرايو دیوت شو کی مان گشو لسرد یک چوبو مسر پشاوې خیالات برد بو میاو لفر دیتم جوژک یک لپش مو د وروه کات مسری بو کې از باو لا هر د بدگرم هر پلم بوده بردو بردستم نه د هاتو جر بروجر پل بو بو له خوار پرم پیدا کړ بد اخو جوژک نه سلکه نانی هرزنی خوام بو چیروکی شیخو نپرینو یک جار زورن زوربه خلقی جزیر لبریانو بویک تری اگیر نو دلخوش کری شو نشینن شویک شیخی که همو یان کس که ملبمتو موروی رشتسپیو آساب دست بچوار موری دو دا بزین کنناز بون شیخ لتنیشت حسن آغا للای سرو دانشت بو. هر یک دو دقیقه شوشهی که تنکلی لبخلی سالت درینه قومی شیلی خوارده و بونی آرقی زحلاوی دیوخانی داده گل شیخ دمی شیل دو آخوینده ندوسته پرسیان قربان او چیه دی خویاوا او والله من نخوشی دلمه درمان دخوم ایو نام ناسن من شیخی شبکانم دایکم خزمی حوارکان بو هاتوم سری خزمان بدم کرو کالی مال حاجو جگر لپیاو پیرکان همو شو آرقیان دخوارده و بلام لشوینه کی ندیاری د بوشو وچان یا شیخ فرمو هنان جوریک پتل لبیس بطلی عرق لسرمز ریس کرابو پی ان گوت فرمو فرمو یا شیخ تو نخوشی عرق د خویتو فرمو ا مشهمون نخوشی دل معنی شیخ کزانې بوی عرق د ناسنو فری وین بونه وړ هرنی وشو بجهشت بونو ل شرمزارین ټویشتبو شیخ ابراهيم حقي شيخي هرګوریک زیرېبو دیدنی حسن اغا لای سروی مجلس د نشتبو قوتی... آی بدا خوا حسن آغا پیر بوی اوش گوته بوی بله بله یا شیخ توش پیر بویز ایدی زمانه یا شیخ براین گوته بوی اری برا پیری لکنگی و دست پیدکا اوش گوته بوی لپنجا لشست لحفتا هر یک قصه ایک اندکر گوتم اجازه هی من کیش ببرموا شیخ نیده ناسیم حسن آغا گوتی بله فرمو وتم تم پیو هر وقت کلخو هستاو اسپا باکه پیش خوی حل نستا بو او پیری گیواتی ایتر نبا عمره نبا موسیبی بونا شیخ خوی با ویقار کردو توزگ نیوچوانی تیکنا لپر لپرمی پیکنی نداو گوتي خبری ویا او چکسه یا او جار بزمکه بو بوا مجودیت نوا تو لکم سالو ملت لپیری نوا کابره بو عبدکی کردارو نخویندوار بلام لدنبدم دا زور زيدك شبيك لديو خان ملا عباس كبا قولي خويا حم سيد هم خليفه هم حججت شويه حج ملا عيشه قلت عبد كي تونيج ناكي كافر اي شوتي ما مصطى اكر شادو ايمان بين المسلمان اوتي بالي اوتي لباش تحفتحوا الرجوان المدني اي شوتي بالي اكر نيشكي عبد كي اوتي خزمينا لا سدستي يوا ججل شادو ايمان هنان ودا كم يمكن نجم با ما مستاز کم در قلب که جنی که هی لطپاله پیستر حفته حوری خوامی نظر دکم او جنیم داتی ملابه وچانه و بوچو عبدکیه پنجره و درچو دی گود خواد زانی اویش بروه نکا حوری هی دنا کم بیا سلیقه سودای بروالت سیدیکی ردین زرد لطرکیه و حت با جزیره دین برد سرقه بران بزانی مردوکه انچونه تاوک چاویلیک دنه و لپر یهوی دکشه یهو مردود حالی خوشه مزگینیم دیا مردود لعذاب دایا خیری باب که به هر دوک بارانده هر قزنجی خوی بو روژک عبدکی بسی باروا لرگی قمشلی توشی سیدی مردو نزده دوینو دستیم ازدکه قربان فرم سوار با. ایجادله نه حرامه کرد بباره دلیق قربان تو برکتی که را کم به سرده بی شغل سربارو سواره عبدکیه کاری بوله داخله پیداله قربان با غریق بکن دلیق نه غریق حرامه ایجادله نه نه او حرام نیه برسره کدیله دکم اگه زنیت کل شرکم هیا بود سرده برم قبل مردنش دلیق زور باشا ابدکیه دلی او باری سواری بوی چی تیده اوش دلی دسیلیدم ابدکیه دلی بله پش فینی نیجوال دلی باقلی من گنمشامی ابدکیه دلی نخیر نتزانی او جارش خاطرد کابره دلی ها زنیم مجوی ابدکیه دلی او جارش قاندبه کابره مردوناز دلی ها تیگه هرزنا ابدکیه با کتاکی با کلی خوری نیپیه یکی به نوشانی گوار نزده ده سید برده بیتو، بکتا کیونده ردیشه، خبر هست سید بیهوش لقراغره دناو یاده دیتراوه تاو. پولکه شهر نبردوه، جمیل حاجو گوتي عبدکی کارتا، اگر جگه لطوا با، پولکه هنده بل. دیگود، پیم گو سرگباب، تو لبن دو میتر گلاو دزانی مردو حالی چیه، لو دیو جوالیکو نزانی بغلاتیش بلای گنما، آخر لجزیری دیم، هرزنو جو گنما شامی چیدکا؟ کومونیستی خالد بغدادش غالی دکرد. په هزاران کوردی جزیره بوبونه شیوعیو هر بقټ زمانه من دالی منو نمازیکی له لحالی له حالي بوبون د بواله سرهمن 43 غنم ابونی روزنامه عربی بدنو بوینده ببی په او کسین عربی بزانیه هر خوب شندنه لشم پکړایا کورډکانین په ګوپال دبرد له بغجدا شونی پولیسو سرشکنده هر, پولیس هر اونبن وکیلین لتر بسپی احمد انترنا وبو قوه خانه کوئی دکرد نو و روشنامه نوری بود خواند نو و لسر روپر بری لیده گرد ستون متونی ندازانی راست هتا او سر دچو گلت جاره کیوابو پیاو لپیا کنین دا دمرد جاره گوت موانا بید نیشانم دا که هر ستونه سر بخوایا بروانا لحنده که نوسرا و پاشموی لفلان روپر دای گوتی ها ها, ها. تو امنه دیش کرد من هر وقت خوامی دخوانمو کی پیان ب ام قسم با پیاوی زور زل بناوی ولوشین که اندامی سیکا بو جیر زور پیا کنی بلان گوتي نقطه نکته کردن دا وستای روش یک پینچ کز گندی و ملایک بنای و ملا سولیمان لگونده که تراوه حات بونه لم گوتيان سیده هجار کشمانه ستالین نویجی با جماعت دا کردیانه و تم که که او حوال خالد بغداد بزانی بویا کمجر کچو مقاامیشلی زور به تاسو چومه دیدنی جگرخون رئیسی فرع حزب کومونیست جزیره کناوی للای بو. سید جگرخون فرموی امر وزور تاریخیه. هزار جگرخون یک تر دبینن روی کړ در رمو حوال هزارش لخو مانو لسر فکر منو وتم ایوا هيا خوينه بیر دچه تولرګ کومونیست ده من بویا کومونیستم خوش دوه ک خزنج بو کوردوبه با جنا زنم فکر من یکه جداه لو ساو د ګل جګر خوين تواو بوينه آشنا جګر خوين خرکی گوند یک بناوی حساری بردسی ترکانو تا گوربوا هر شوانو نخوند وربوا به ګوری چوتنافقین بوتم لایمز لملاتی بیزارا جبو شاشکی فردا او ملیله کوردا تی ناوه شعر لرونهیو چاب کراو بود خوشویست کردان تینوی ازادی لسوریا و ترکیه دیوانی که با یکم جار چاب کراو و نادر بود دیهاتی ناو کردانده دیگ دیوانی که برکوتوه پر پراشیان کردوه بود پیروزی وک نوشته لسر مندالانیان دروه کم کم لکردهاتی پشکشه کردوه بود حوال کومونستان و شرکان سور هلگر روون. من که دیتم هاوکاری لجنه نوچه شویه قامشلی ده کرد بلان به اندم قبول نکرابو. لجیان د زوري چرماسري بو چن جار حبس کرابو جزره بدرابو من دلی زورو نانیخم لو پاره نه درید د دژا خوراکي اغلب نانی وشکو چابو جریوابو چاش نه بو رموي رئيسلر نه کچ سیوات کیبو هاو کاری جهبون ناويکم لبرن ماو پی ام واي نه پروبو رښو زور وشکو دواته هر دی ګوت هر شته دلم من بدالیل علمی پتان اسپاد دکم روز جمعه دوئنیج گل سوافیه رجدار تسبح بدست بدو و آخرین دست نم مال رمو دایش رمو دلم لمال نیا کرتن چیه دلی خود خو همه امشو اینا خاتین جام رمو جمرابیه ای ایش دلی آی بلم لوسر سکوتانه لنویج جم هاتونا شوی فربون ریش سگ رموی من هزار حزاج نیو بخوداده کته کله قامشلی د جام زور که دهت نه لم کوردی زور توخ کومونیست ملا حاجی و همو بابتک مجلس ایوران من خوش بو جره یک یک زور گرم ل کوردی آتی دا کناوی اپډیټ تلوبو موتی هر کی د نیوان دزلو فراده لا سر کور دوستن حسابو دا جکراوه سید جگرخون فرموی نخیر مال ام جسیرش مالی عربو یمه بنا روات عجين عبد شابی پره پشتی سری کروا گرتو بر مستو زلیدا حینکن سیدا من له ناو با عبد امجد جاری کی تر نایو دیدنیم درم کړ پاش او ب ماویق کړه کی دولمند حسکی بنو سعید ب ماشینی خو سیدا منی بر دگران بونو عشایی عربی شمر شوګ میوان شیخ عبید ناو بوین که شیخ بر بو رشمالو قصر لسحرا او چندین کادیلاکی له رشمال. رشمل شیخ دل خوشید دامه وک کسرټری بم جن مبوبینه مندم دلمندک ديار نن ذکر شو توتنم پینه ما به شو نار دی له شاروکی کی ترکیه نزیخ نور همو جره جغره او توتنو پريان بو هنه عربي کی شارستانین له یو قدر لا قیمشلی حاکم استاش له حسکه مرکزی استانې جزیرات دبیته مدع العام گوتی منش دگل تندیم، باران ولنجی زبو، شرق لسهره رم مینوا، روشیدوای میوان رشمالی شیخی که عربی کونه کرد بنویش شیخ محمد بوین، زمانی بدایان ابو، دیگود کردم، لپاستاش جنایی بر نسل عرب داده، لبر پیریان هرچنینی که لی بووه بی بو جراینوا، جنرالی فرانسوی حت حسک، لعشاری جر روا، هر سرکه نسبی اصل عربه حقوقی بو دبراتوا، چو مجل. خنجرکم لسر گوتم او نسبمو خنجری کور ناوی با پیرمه، حقوق زیادری با بریمه و دیار بو اشعر جیرانی زوری لاترسن. وی گران و خوشو است لیره توبم شویا دین کوتای بشی سی سو استی مکرریانی کتیبی تا بشی گترو ل شوی گتر نوا شوتنارم ژن تن شاد